اوه <Sýst> سوری <Sýst> فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا این ایلا هکم به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است سوگند به فرشتگانی که در صفوف منظم گوش به فرمان خدا سوگند به فرشتگانی که ها و پلیدیها را دور می کنند و قسم به تلاوت کنندگان قرآن حقیقتا خدای شما یکتاست پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست میباشد او پروردگار مشرق هاست ها ما آسمان دنیا را با وجود ستارگان زینت بخشیدیم و آن را از گزند هر شیطان خبیسی در امان داشتیم آنها توانایی شنیدن اسرار عالم بالا را ندارند و اگر چنین این قصدی کنند از هر سو آنها را عقب میرانند تا از حقایق دور گردند زیرا آنها لاگل عذابی دائمی هستند مگر شیاطینی که استراغس سهم کنند که در این صورت با شهابی سوزان و نافذ تحت تعقیب قرار می گیرد از منکران حقیقت بپرس آیا آفرینش آنها سختتر است یا آفرینش کل هستی؟ ما آنها را فقط از یک چسبنده آفرینه ایم. تو از عظمت حقایق در شگفت می شدید. ولی آنها تمسخر می کنند و انگامی که به آنها تذکر داده شود پند نمیگیرند و آنگاه که معجزهی ببینند مسخره می کنند و گویند این چیزی جز یک جادوی آشکار نیست آیا وقتی مردیم و تبدیل به مشتی خاک و استخوان شدیم دوباره زنده برانگیخته خواهیم شد آیا پدرانمان نیز همینطور؟ بگو آری همه زنده برانگیخته می شوید در حالی که خار و زلیل هستید خواهند دید که با یک سیحه بلند برانگیخته خواهند شد و گویند ای وای بر ما این همان روز قیامت است این همان روز جدایی حق از باطل است که شما همباره آن را تکزید می کردید ظالمان و همسرانشان و آنچرا که پرستش می کردند همه را جمع کنید همان چیزهایی را که به جای خدا میپرستیدند، همه آنها را به راه جهنم راهنمایی کنید و نگه داریدشان باید از عمل بازخواست شوند چرا اکنون یک دیگر را یاری نمی کنید؟ نه آنها همه امروز مجبور به تسلیم هستند امروز آنها یک دیگر را معاقضه می کنند به رهبران گمراه کنندشان گوگند شما بودید که از در خیرخواهی بر ما وارد می شدید و اکنون کارمان به اینجا کشیده شده است آنها جواب دهند نه شما خودتان به حقایق ایمان نیاوردید ما هیچ سلطهی بر شما نداشتیم بلکه خودتان گومی سرکش بودید امروز حکم عذاب الهی بر ما محقق گشته و بیشک همه آن را خواهیم چشید. آری، ما شما را گمراه کردیم زیرا خودمان نیز گمراه بودیم. در آن روز همشان در عذاب الهی مشترکند. بدانید ما با مجرمان این گونه عمل می کنیم. زیرا با آنها هرگاه در زندگی دنیا گفته می شد هیچ معبودی بجز الله نیست متکبرانه برخورد می کردن. و میگفتند ما به خاطر یک شاعر دیوانه خدایانمان را ترک گوییم؟ نه او حق را آورده است و پیامبران راست گفتند و شما به خاطر انکار حقایق عذاب دردناک را خواهید چشید بدانید که فقط به خاطر عمل بدتان مجازات میشوید مگر بندگان آزاد شده خدا که نجات خواهند یافت زیرا برای آنها رزق و روزی مشخصی است چون میوهای های پر و آنها محترم و گرامی هند. در بهشت های بر تخت‌های هایی هم تکیه دادند و جام‌های از شراب تهور و گوارا میانشان به گردش در شرابی سفید و درخشان که برای نوشندگانش بسیار گباراست شرابی که نه عقلشان رازایل می میکند و نه موجب مستیشان می شود. و در کنارشان همسران زیبا است که جز به شوهرانشان عشق نمیورزند اینان در لطافت و سفیدی چون تخم مرغهایی هستند که از دسترس هر کس دور بودند برخی رو به برخی دیگر کرده و سوال می کند. یکی از آنها میگوید من در دنیا هم داشتم که می گفت آیا تو این حقایق را تصدیق می کنی؟ آیا وقتی مردیم و تبدیل به مشتی خاک و استخوان شدیم دوباره ما را مجازات می کنند؟ یکی گفت آیا می توانید از او خبری بگیرید؟ هنگامی که از وضعش مطلع شدند او را در وسط جهنم دیدند و آن بهشتی به او گوگد به خدا قسم نزدیک بود که مرا چون خودت به حلاکت بکشامیم. اگر لطف و اناگت پروردگارم نبود، من نیز اکنون در جهنم حاضر بودم. بهشتی به دوستانش میگوگد، آیا ما دیگر نمیمیریم؟ به جز همان دفعه اول که مردیم یعنی مجازات نمیشویم. بدانید این همان پیروزی بزرگ است. شما در بهشت جاف دانید. برای مثل این عمل کنندگان باید عمل کنند آیا این مائده بهشتی بهتر است یا درخت زقون ما این درخت را برای عذاب ظالمان آفریده درختی است که از اعماق جهنم می رود. شکوفای آن مامند سرهای شیاطین است جهنمیان از آن میخورند و شکمهایشان را از آن پر میسازند آنگاه روی آن آب سوزان و متعفنی میخورند بازگشتشان همواره به سوی جهنم است خروجی در کار نیست زیرا آنها پدران خود را در دنیا گمراه یافتند و با وجود این شتابان به دنبالشان میرفتند قبل از آنها نیز اکثر پیشی میان گمراه بودند ما ای بر آنها فرستادیم پس بینگر عاقبت کار اختار شدگان چه شد جز بندگان آزاد شده خدا همه مجازات شدند نو ما را دعا کرد ما اجابتش کردیم و چه خوب اجابت ای هستیم و او و خاندانش را از آن اندوه بزرگ راندی بدین فرزندانش فرزمدانش را بر زمین زنده باقی گذاشتی و نام نیک او را در امتهای بعد باقی نهادی سلام علی نوحیم فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین سلام بر نو در میان همه جهانیان ما این چنین نیکوکاران را پاداش میدهیم زیرا نو از بندگان با ایمان ماست سرانجام دیگران را غرق کردیم یکی از پیروان نو ابراهیم است آنگاه که با قلبی سراسر تسلیم نزد خدا آمد و به پدرش و قوم خود گفت چه چیز را پرستش می‌کنید چرا به جای خداوند به سوی این خدایان دروغین میروید؟ مگر چه تصوری از پروردگار جهانیان دارید آنگاه نگاهی به ستارگان انداخت و گفت من بیمارم با شما به جشن عمومی نمیآیم پس جماعت نیز به او پشت کرده رفتند. ابراهیم مخفیانه وارد بتخانه شد و به بتها گفت: چیزی نمیخورید؟ چرا حرف نمیزنید؟ سپس ضربه محکم با دست بر پیکر آنها فرود آورد. مردم به سرعت به سوی او رو آوردند. ابراهیم گفت: چرا چیزهایی را که با دستتان میتراشید میپرستید؟ حالان که هم شما و هم آنچرا که میسازید خدا آفریده است؟ گفتند برج بلندی برای او بسازید و از آنجا او را در جهنمی از آتش بیندازید. آنها نقشه نابودی ابراهیم را کشیدند. اما ما آنها را مغلوب کردیم. ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم میروم یقین دارم که او مرا باز هدایت خواهد کرد. ابراهیم گفت پروردگارا به من فرزند سالح و شایستی عطا کن. ما نیز او را به فرزندی بردبار بشارت دادیم. هنگامی که با فرزندش به مقام رفیع تلاش فقط برای خدا رسید به فرزندش گفت پسرم من در خواب دیدم که تو را زیب میکنم فکر کن و نظرت را بیان کن پسر گفت ای پدر به آن که به تو امر شده عمل کن الله مرا صبور خواهی یافت. هنگامی که هر دو سراپا تسلیم امر خدا شدند و ابراهیم فرزند را به پیشانی خواباند ما ابراهیم را ندا دادیم که ای ابراهیم نسبت به خوابت صادقانه رفتار کردیم ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم این همان آزمایش آشکار و بزرگ بود و به جای فرزندش زبه بزرگ و ارزشمندی را فدیه قرار دادیم و نام نیک او را در امتهای بعد باقی نهادیم سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنی سلام بر ابراهیم ما این چونیم پاداش نیکوکاران را می دهیم زیرا او از بندگان با ایمان ماست و او را به تولد اسحاق که پیامبری از سالحان بود مژد دادیم و او و اسحاق را با برکت گردانیدیم در حالی که برخی از دودمانشان نیکوکار بودند و برخی به خود آشکارا ستم می نمودند. ما به موسا و هارون نعمت عطا کردیم و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ راندیم یاریشان کردیم تا پیروز شدند و به آن دو کتاب آسمانی روشنگری دادیم و هر دو را به صراط مستقیم هدایت نمودیم و نام نیکشان را در عمتهای بعد باقی نهادیم سلام علموسیوهاوننا كذلك نجزی المحسنین انهما من عبادنا سلام بر موسی و حارون. ما این چونیم پاداش نیکوکاران را می دهیم زیرا آنها از بندگان با ایمان ما بودند الیاس نیز از پیامبران بود به مردم خود گفت چرا حرمت خداوند را نگاه نمی آیا بوت بعد را می پرستید و خدای احسن الخالقین را وامی الله پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست الیاس را تکذیب کردند و عاقبت آنها همه در عذاب حاضر شدند مگر بندگان آزاد شده خدا که در نعمت و برکتند نام نیک الیاس را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم سلام علی ایلیاسی اینا کذالک نجزی المحسنی. سلام بر آل یاسین ما اینچنین پاداش نیکوکاران را می دهیم. زیرا او از بندگان با ایمان ماست لوط نیز از پیام بران است او و همه خاندانش را نجات دادیم مگر پیرزنی که از بازماندگان در شهر بود سرانجام همه را نابود کردید شما هم وارث بر آنها عبور میکنید و همچنین شبانگاهان پس چرا تعقل نمی کنید یونس نیز از پیام برام است هنگامی که به قصد فرار به کشتی سنگین و و از مسافر نشست انداختند تا به علت سنگین بودن کشتی یکی را به آب بیاندازند پس خرعه به نام یونس افتاد و مغلوب شد. او را به دریا انداختند و ماهی بزرگ او را بلعید در حالی که خود را ملامت می کند. و اگر او از تصویح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می ماند. سرانجام او را رهایی بخشیدیم و او را در سرزمین بایری افکندیم در حالی که بیمار بود برای او بوته کدوی رویاندیم تا زیر سایه برگهای پهن آن آرام گیرد و او را به سوی جماعتی صد هزار نفره بلکه بیشتر فرستادیم آنها ایمان آوردند و ما نیز از نعمت مختلف تا مدتی معین برخوردارشان کردیم از آنها بپرس آیا دختران از آن پروردگار توست و پسران از آن آنهاست؟ آیا فرشتگان را مؤمنس خلق کرده ایم و آنها هم شاهد بودند؟ آگاه باشید که آنها با این تهمت بزرگ می‌گویند خداوند فرزندی آورده حالان که دروغ میگویند آیا دختران را بر پسران ترجیح داده؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم می چرا پند نمی‌گیری؟ شاید برای ادعاهایتان دلیل روشنی دارید اگر راست میگویید کتابتان را که به آن استناد میکنید بیاورید آنها میان خدا و جنیان نسبت خویشاوندی قائل شدند حال که جنیان میدانند که برای بازخواست به سویش احضار خواهند شد منزه است خدا از آنچه چه میگویند مگر بندگان آزاد شده خدا که هیچگاه از این توصیف ها بر زبان نمی آورند. شما و آنچه که پرستش می‌کنید، نمیتوانید نمی توانید کسی را فریب دهید، مگر کسانی که به جهنم وارد می شود. فرشتگان گوگند، هر کدام از ما مقام مشخصی دارد و ما همگی گی برای اطاعت از خدا به صفی استاده ایم. همه ما تصویح روی مشرکان هم باره گوگند چنان یکی از کتب آسمانی پیشینیان نزد ما بود بیشک همه ما از بندگان آزاب چده خدا بودیم اما قرآن که نزدشان آمد به آن کفر برزیدند به زودی نتیجه کفرشان را خواهند فهمید وعده و فرمان ما از قبل برای بندگان مرسل ما مسلم شده است و آن اینکه که همشان در انجام رسالتشان یاری میشوند زیرا لشکریان ما پیروزند از مشتکان تا مدتی روی بگردان ببین که چه خواهند شد آنها هم خواهند دید آیا نسبت به مجازات ما عجله دارند؟ هنگامی که عذاب الهی به ساحت خانه هایشان فرو چه صبح بدی خواهند داشت اختار شدگان. از آنها تا مدتی روی بگردان. بنگر، آنها هم عاقبتشان را خواهند دید. پروردگار تو، آن پروردگار با عزت از هر وصفی که میکنند ملزز است. و سلام بر همه پیام و ستایش مخصوص خداوی است که پروردگار همه جهانیان است. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم راست خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و